یک مرد مرد متاهل شب یا روز بخوابد و در خواب به یار... یارو بزند به بولوار روزه باطل می شود نه؟ قول یارو چیه؟ اگر شوارد. کسی که به در شب احتلام شد در شب احتلام شد یا مقاربث انجام داده بود غسل نکرد و روزش غسل کرد روزش درسته مثلی است که بیش از پرسیده ورسیده می شود. کسی شب ناخواگاه بود خام تا پاک کنی خودشو قبل از هر در روز روشن بر قوصله هم بکنه نمازش درست و روزی هم درست روزش باطل این قول امام ابو حنیفه امام شافی مالک و حمد همین همی چیزو میگن ایلا یک حدیث از حضرت ابو که قول خودشه اما ان قول دیگه حجتنی زیرا نبی مکرم اسلام صلی اللہ و صلی اللہ و که اللہ از خواب بیدار میشدن که مید نکردی بودن. بعد از اون که فاید داخل می قصر میکرد می کرد و روزی هم می پسی روزه رو باطل نمیکنه. اما اگر در روز کسی خواب بود ناخواسته احتلام شده روزش باطل نمیشه. اما اگر خودش خودش رو احتلام کرد روزش باطل میشه. اگر پیش خانم رفت روزی هم باطل هست کار حرامی کرده دو ماه روزه پی در پی باید کفاره بگیره این که من نمیدونستم، این که من خبر نبوده اینها عوضر نیستن. حالا بدونید یا ندونید این جرمش هست دومه روزه لازم میشه چون خیلی میگه من نمیدونستی از احکام با خبر نبود ایک از احکام با خبر نیستی تو مغصرستی بعد رو یاد بگیرید صحابی همین کار انجام داده بود ندونست نبی مکردن اسلام حکمه دومه روزه رو بر او فرمود